چنین گفت روشن روان کسی که کوتاه گوید به معنی بسی هر آن کس که مغزش بود با پر فراوان سخون باشد و دیریابو به جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرند سلام از میکنم خدمت شما درود میفرستم بر شما ایرانیان عزیز شما برنامه پنجره های رو به مختاب رو میشنوید استاد فریدون جنیدی خود اخیق خب منشون هستیم تشریف دارن در استاژیو مثل هر یک چند شب و داستان های شاهنامه عزیز بیاری یزدان بیاد داریم که در گفتار پیشین اردشیر از کررم از هفتبات از سپانو گریخت و به در خونه یک دو که اوملدنا ازش پذیرایی کردم ما سلام علی کرده بودیم من بعد دوباره سلام می کردمم خ یاددم ر سلام روز روز در شما روز و شما شاد باشید و همطور شننده های عزیز سلام و اوار پرسی باشون داشته باشید که منکردندهتصا شدم که شما چرا برنامه رو به شیوه همواره آغاز نکردید بله، ببخشید من چون سلام کرده بودیم گفتم شما سلام علیه میکنید و شروع میکنید این همون مشکل هم شعره همین شعری که شما فرمودیده شاید شامل حال منم بشه یک بار دیگه شعر رو منیفم چقدر ریبا چقدر درست این جرده. از گفتارهای بزرگ مهر بختکان انوشه هست که میفرماد که مم. کسی دارای روان روشن هست که سخن و هم در سخنش مغز و گفتار و اندیشه فراوان باشد این همون چیزیست که بعدا ترجمه شد و به عربی گفتن که خیر و خلا و, و دل این گفتار بزرگ مهره که به عربی ترجمه شده پیداست که کسی که دارای مغز فرشتاب باشد سخن بسیار میگه و دیر دریافت میکنه گفتار دیگران رو اما کسی که بر حقیقت دارای اندیشه از باشه کم سخن میگه چون برای سخن و برای گفتار، گفتار در ایران باستان مقدس بوده. اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، گفتار رو نباید بیهوده به کار برده. گفتار رو نباید بیجا به کار برد گفتار رو نباید کشید. گفتار باید هر چه تر و پرمعنی‌تر باشه. بنابراین هر, هر چی خلاصه تر اون بهتره که در این صورت معنی بسیار خواهد داشت و این اشخاصی که نمیتونم که در حقیقت زیاد بیندیشند گفتار رو تورانی میکنن و در حقیقت به مفهوم گفتار نیک ستم وارد میکنن این چیز که را شهربان بزرگ می رو بخته خواهند شاید اون اتفاقی هم که افتاد امروز رو خواستم کم بگم مونتا حق مطلب رو عداد مکردم باید حق مطلب عداد بشه؟ اداد اداد ببخشید اداد بشه حتما خب به حسات میشه انسان داره اندیشه و در یافتا و احساسات زودگذر هست که اینا رو روش تاثیر بذارن و یه چنین اتفاق مهم نیست این نظر من اما خیلی دقیقه خیلی درسته خیلی اگه ما رایت بکنیم خیلی اتفاقات برای اندیشه ما میافته مدبی که من میخواستم اینجا بایم کنم گروهی از هموندان برنامه و هموندان بنیاد فدوسی خراسان هفت رشته با من تماس گرفتیم که یک شروع وجد و اشتیاق خیلی زیادی در مشهد و خراسان پیدا شده بود به خاطر هزار فدوسی در اکثر خ اونها یعنی چهره از فدوسی یا داستان های به داستان شاهنامه کشیده و مردم از این بسیار شادمان بودن. اما هفته پیش چندن که روزنامه خبر دادن روزنامه خراستاناتا به خاطر مخالفتی که بین شهرداری و یه دستگاهی دیگه پیش اومده متاسفانه یک شب تا صبح تمام اون که هایی که یعنی نقاشی هایی, هایی که روی دیوارهای میدان فردوسی بوده تا صبح روش گشت کشیدن من نمیدونم این کاری یعنی چی یعنی در نیافتم وقتی که شهرداری در از یک سال هنرمند بزرگ رو با, با همیارانش بیاری میگیره و میدان رو به این شیوه می و یه وقتی بود که مثلا می‌گفتن که فردوسی به خاطر اینکه متن پادشاهان مثلا قدیم رو کرده ما خب نمی‌پذیریمش ولی تو این هزار ملت ایران و همه جهانیان به اینجا رسیدن که برترین اندیشه جهانیست به اینجا رسیدن که شاهنامه برترین گفتار جهانه به اینجا رسیدیم که شاهنامه بزرگترین، گفتارترین، جرترین. تاریخ جهان باستانه و گوگنده اون یک مردی است که از جوان نیاکان یاری گرفته و چنین در آسمان سخن پرواز میکنه آیا شایسته شاست هست که حالا در این زمان که جهان داره فردوسی رو ستایش میکنه ما در شهر نزدیک به توس این کارو بکنیم گمان من این مصداق یک گفتار خود فردوسی است چون پیشان شود مرد را روزگار همه آن کند کشناید بکار یعنی این این کار رو قیر از این گفتار نمیتونیم تینیم ما و این گفتار فقط بسنجیم هیچ مفهوم نداره همه همه‌مون ناراحت شدیم کل خراسان همه, همه ازور خاطر شدن چرا در حالی که من تو اونجا که خبر دارم 48 میلیون تو هم بابت اون نقاشی یا خرج شده بوده خب این 48 میلیون از پول دستگاه دولت یا شهرداری بالاخره پول مردم بوده این یک شب بیان روش بکشن حالا انشاالله با این مطلبی که شما فرمودید و مسئولین حتما پیگیری خواهند کرد و این اتفاق نمی افته و درست میشه اونجا حالا مهم برای ما که بچه های ما نسل ما جوون های ما با تصاویر شاهنامه در خیاب اونها کوچه ها اینها آشنا بشن تو می مادین بزرگشه آشنا بشنین خیلی کمک میکنه یک سوال برای اون کسی که می بینه ایجاد میکنه اون سوال رو میپرسید چیه از حالا دنبالش رو میگیره مادرین این کار میکنیم دیگه این کار فرهنگیه و مربوط به کسی خاصه نیست من همه مدلته خیلی رو تکردید من سپاس از شما در اینجا تلفون های برنامه رو ارزم کنند 222-485 222-485 222-588-20 222-588-20 و شماره پیامک 3558 و شماره پیامک سی هزار و و هشت با این تلفن ها و با این شماره پیامک که ما میتونید با ما تماس بگیرید سوالات خودتون رو از استاد فریدون جنیدی بپرسید این میکنم که پایگاه تلارسانی ما همطور که در برنامه های گذشتم عرض کردم خدمتون برنامه کلیه برنامه،, برنامه از اردی به هشت ماه سال گذشته بر روی سایت هست شما میتونید کلیه برنامه های پنجره های همه برنامه های شبکه رو به برنامه پنجره های به رو بشنوید اگر پیگیر هستید پیگیر داستان های شاهنامه هستید و پایگاه اطلاع رسانی ما .ir هست و عزیزانی که حالا اقوام دوستانشون خارج از کشور هستن، میخوان برنامه‌های ما رو بشنون، میتونن از مسیرهای ماهواره‌ای خاطبرت و نیل صد اون بخشی که رادیو هست، رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه برنامه رادیو فرهنگ، ببینید برنامه‌ی ما رو بشنونن. معذرت سعی میکنم که تون صحبت نکردم، گوشتاب رو نداشته باشند و اون چیزی که استاد جنیدی خواندند رو از این بابت دوم امید خدا را کنم. ما الان رویی چندم رو هستید استاد؟ 111 از دفتر چهارم از دفتر چهارم و ادامه داستان های کارنامه عدشیر بابکان هست این رو... رویه و صفحهی که خدمتون ارز کردند مربوط میشه به شاهنامه‌ای که خود استاد فیدون جنیدی بیرایش کردند. شما شاهنامه های خودتون رو باز نگهت دارید اون بخشی که داستان های کارنامه عدشیر بابکان است میتونید اشعار رو پیدا کنید با ما با رد م رزم اردشیر با مهرک مستاد بر تو اون بخش با ما همراه بشید افسوده ها رو استاد نمیخونن اما اشاره میکنن در بعضی از موابع پس ما شما شروع میکنیم بردم رو در خدمت استاد فریدون جانهیدی بیاری از آن جوانان اون تو جوان پرستاری کردن از زردشیر و بعد پرستن که تو چرا اینطور هستی گفت که من گریختم از لشکر حردباد و از یاران اردشیر هستم اونها خیلی پرستاری کردن ازش و بعد از اینکه که خود اردشیر هست گفتگو ادامه پیدا کرد و در پایان گفتن که تو در جنگ با کرم و با خفتواد بسنده نید گر نپی چیزه داد یکی جای دارند بر تیغ کوه دو اندرون کرم و گنج و گروه سخونه چو بشنید چاهر همه مهر جوینده و دلپذیر بدیشان چنین گفت کاری رواست بدونی که ایشان مرا با شماست جوانان برای پاسخ راستند دل خوشمندش بپیر استند که ما بندگانیم پیشت به پای همیشه به نیکی تو را رهنمایم چوبر دارستان جهان دارشاه جوانان برفتند با او برا شاه شاهبر شد سپاه هنجمن بزرگان و فرزان و رایزند براسود یک چند روزی بداد بیامد سوی مهرک نوشزاب به جهرم چون از زیک شد پادشاه نهان گشد و مهرک وفا. این همه در حقیقت گفتارهای خود کارنامه علی شیربابا بخانه در حالی که مهرکی که بزرگترین پلوانان ایران و نماینده ای که از هفت و بزرگ ایران بوده که البته به دست ردشیر کشته شد به سرمشه تلخیم داشت. بله بله خیلی خیلی خیلی نادرست. دل پادشال پرد پیکار شد این که من در همین جایی یاد میکنم من از زبان خودم و از زبان فردوسی میگم که مهرک بی وفا روان مهرک آزورده نشه بدونی که بعد از هزار و سال روشنایی افتاده رو تاریخ ایران و ایرانیان دارن پی میبرن که کی بی وفا بود کی بی وفا نبود دل پاچا پرز پیکار شد همی بود تا او گرفتار شد به شمشیر هندی بزد گردنش و آتش دارن داخت بی سر تنش این یک کاری که اگر انجام شده باشه خلاف فرهنگ ایران بوده. برای ایرانیان آتش رو گرامی می‌داشتن و چیزی تو آتش نمی‌داختند. یعنی حتی آتش رو فوت نمی‌کردن. تا مگر مبادا که از این فوتی که دارن می‌کنن ذرات ریز آب دهانشون رو آتش بیاد. کسانی که مسئول آتش کرده بودند یک چیزی به نام پنام روی دهنشون می و بعد عدستارو می که در حین صحبت کردن مباده که ذرات آب دریزه و چطور ممکنی که یک کسی در ایران باشه با فرهنگ ایران باشه و تن یک کسی که سرشو بریدن مثل اون رو به تو آتش دهست اگر درست باشه این از کره عدشیر هران کس کسان تخمه آمد به م بازم این نشون میده که با خنجر کشتن یعنی یک گونه ستمگری و یک گونه انتقام کشی نادرسته بلکه یکی سی ممکنه بایه زربه شمشیر بکشن اما وقتی بخوام با خنجر بکشن باید خنجر بزنم به قلبش به سینهش به ریست چند جا بزنن بایه زربت نیست بایه زربت نیست مگر دختری کن نهان گشدوی همه شهر از او گشت پرگفته بود برفتن به دجه هفته هفتواد و کشتنکه پراکنده لشکش شد همگروه دیو تا میان دو کوه یکی مرد بود نام او شهرگیر خرند و سالار شاه عدشی. یعنی فرمانده سپاه عدشی بود چون این گفت پس شاخ با پهلوان که در همی باش روشن روان یعنی بیدار باش شب و روز کرده تلایه بفا سواران با دانش و رهنمایی اگر دیدبان دود بیند روز شباتش آتش چخورشید گیتی فروز بدانید کامد به سر کار کرم گذشت دختر و روز بازار کرم گزین که از آن مهتران هفت مرد دلیران و شیران روز نبرد بسی گوهر از گنج بغزید نیز زدیباب و دینار و هرگونه چیز چشم خرط چیز ناچیز کرد یعنی بی ارزش گووهر هاا رو بیا ارزش به شما رو برد. برای بلکه میخواست این کار رو بکنه که بر اون بش پیروز بشه ب به چشم خرد چیز ناچیز کرد دو صندوق پر سر و ارزیز کرد ارزیز غلع و صرب هم که هر دو تلزی که خیلی زود آب میشن و این میخواست برای در حقیقت داستان ساختگی کشتن کرم از این فلس استفاده کن بله چون از بردنی جامعه ها کرد راست سال ها را آخر خریده بخواست با خر رفتن که خودچونو به صورت بازرگان نشون های معمولی و... همون روستایی دو مرد جوان که بودند روزی و از آن انجامن برد با خیشتن که هم دوست بودند و هم رایزن. نگه کرد یکتن با آواز گفت که صندوق را چیست اندر نهفت چون این داد پاسخ به دو شهریار که هر گونه ای چیز دارم ببار ز پیرایه و جامه و سیم و زر ز دینار و دیبا و در و گهر که بازارگان خراسانیم برنجندرون بیتناسانیم بسی خواسته دارم از بخت کرم کنون آمدم شاد تا تخت کرم اگر بر پرستش فضایم رواست که از بخت او کار من گشت راسته چون شه بر پرستنده بخشاد راز همان گهتر دش گشادند باز یکی سفره پیش پرستندگان بگسترد و برخواست چون بندگان خودش ماننده خدمت خدمت کرد ز صندوق بخشاد بند و کلید برآورد و برداشت برد جام نبید هران کس که زی کرم بردی خورش ز شیر و برنج آنچه بود پرورش بپیچید کردن زجام نبید که نوبت بودش جای مستی ندید یعنی اینکه حاضر نشدن که می بنوشند بله. چوبش نید بر پای جستر شیر که با من فراوان به نین شیر به دستوریه به دستوریه یعنی فرمان و موافقت به دستوریه سرپرستان سه روز رو را،, رو را بخوردن منم دل فروز شما می گذارید با هم سه روز چهارم چه یکی تیفروز براویت یکی کلبه سازن فراخ سرتاق برتر زیبان که کلبه یعنی مغازه اون چیزی که امروز نگم مغازه اگرچه مغازم ریشش ایرانیه در طور که این خزانه بوده خزانه یعنی جایی که بارو رو انبار میکردن مخزانه در به صورت عربی مخزن دارمد مخزن در جنگ های چلیپایی یعنی سلیبی اروپاییان رفت به اروپا و اونجا ازش مگازین رو درست کردن بعد مگازین از اروپا دوباره مرتبه برگشت بیران شد مغازه و اصل دو زبان روش هست یکی مخصن عربی یکی مگازین انگلیسی فرانسه اما اصلش همون خزانه یا خزینه ایرانیه با این حال خزینه به انبار هم میشه گفت کلوه یعنی مغازه مردم همه دانند که در کلبه سعدی است که در تبلیه اتار نباشد یا در نامه سعدی است که در کلبه اتار نباشد به و صورت اومده کلبه این مغازه ما درسته مویم یعنی یه خانه ویرانه که چنین نیست چهارم تو خورجید گیتی فروز برایت یکی کلبه سازم فراخ سر تاق برتر زیوان و کاخ فروشندن هم خریدار جوی تزاید مرا نظر کرم آب روی بر آمد همه کام او زین سخن بگفتند را پرستش تو کن بخوردند می چند دو شادان شدند پرستندگان می پرستان شدند بیاورد ارزیزو رویین لوید لوید یعنی دیک امروز روز تا اونجا که من دیدم در تبرستانو گیلان به صورت لوه به کار میره به خصوص دیگه مسیر رو هنوز با اینکه افسوس که مصر رو ما به جهان هدیه کردیم و بعد در این سال ها از دستمون داره میره دیگه مسیر میگه مرسلوه در تبرستان همه مرسلوه لوه یعنی دیک که گونه کهانترش و ادبیش عدیبی همون لوید باشه بیاورب ارزیز روین لبید برف روخت آتش به روز سپید چون کلم را بود گاه خورش ز ارزیز جوشان بودش پرورش یعنی قل و ریخت و چشوندو دوچشمش شو بر اردشی رو افتاد دهان راز بحر خورش برگشاد فرو ریخت ارزیز مرد جوان به کنده درون کرم شد ناتوان تراکی برآمد آمد زهل قوم و اوی که لرزان شدند کنده بو بوم و اوی بشد با جوانان چو با دردشیر شیر، و کوپال و شمشیر و کوپال و تیر پرستندگان آنکه بودند مست یکی زنده از سیر ایشان نجست برانگیخت از از بامده تیر دود دلیری به سالار لشکر نمود دوان دیدبان شد بر شهرگیر که پیروز گشت عد... پیروزگر گرشت شاهردشیر بیامد سباک پهلوان با سپاه، بیامد لشکر به نزدیک شاه چه آگاه شدان سخون هفتواد باد گشت پر پردرد و سر پرز, دا... پرز باد بی آمد که دجراه کند خواستار بران باره برشد دمان شهریار سوی لشکره که برگشت باد گرفتار شد در میان هفتواد درباره در باره باد که برمگرده روی صورت یکی از دو سپاهیان ما پیش در صبح کردیم میکنه بله فرود آمد از باره شیر پیاده بود پیش او شهرگیر ببردند بالای زرین لگام بالای این اسب ببردند بالای زرین لگام نشست از برش مهتر شادکام به تاراج دادن همه خواسته شد از خواسته لشکر آراسته بکردند در آن کشور او تشکبه به دو تازه شد مهرگان و صبه سپردون زمان کشور و تاج و تخت بدون میزبانان بیدار وقت پس اون دو تا برادر از آن جایگه رفت فیروز و شاد بگسترد بر کشور پارس داد که آسودهتر گشت مرد و ستور بیاورد لشکر سوی شهر گور به کرمان فرستاد چندی سپاه یکی مرد شایسته تاج وگاه اوز ان جایگه شد سوی سر بخت بدخواه کرده نگون استاد جنیدی برای ایران چه کار کنیم؟ ایران به چی نیاز دارد؟ شاگرد پذیرید. درود بر شما استاد جنیدی. به ایمیلتون سر بزنید شاد باشید من پایان رو در آغاز بگم چون با کمپیترزیات سرکار ندارم ایمیل من یکی از فرزندان رو بونیاد آقای ابراهیم میبینه و حالا خب پردو از او خواهش بکنم که به ایمیل سر بزنه منطبا کار من بیشتر تدریسه بر... ده. بودن با جوانان بچه‌وانم همه فرزندان ایران همه این فرزندان فرزانه نور چشم من و تاج سر من هستند و اگر از من بخوان چیزی بیاموزند میتونن جان من فدای فرهنگ ایران و فر رو فرزندان ایران هست این دیگه چیزی که در طول این سالها روشن شده شما هر وقت که بخواید تشریف به یاد نشور در این آموزش رو برن پایه شرکت کنید برای ایران باعث کار کرد؟ باید خودشو به فرد انسان، خودشو به فرهنگ ایران، به فر... فرهنگ ایران آرایش بده. ما باید کتاب‌های باستانی رو بخونیم. باید به ویژه، به ویژه، به ویژه شاهنامه رو بخونیم بارها و بارها. با ویدئویی که شده، با تفسیری که شده، کتاب هایی که همراه او هست، ما باید یه از گذشته خود، یک چراغی برای راه آینده هم بکنیم این چاره ماست برای اینکه در آینده بتونیم ابراز بکنیم که ما فرزندان و اون بزرگمران و اون بزرگ زنان تاریخ گذشته جهان است. بله سلام و درود میشه در باره موضوع شاهنامه بیشتر توضیح ببینید. توضیح یعنی روشنگری و من مسول روشنگری درباره شاهنامه هستم. یکه بیشتر از این چی اما بازم میگم که شاهنامه کهنترین تاریخ جهان و بزرگترین و شگفتترین رویدادهای جهان که از همه تاریخها در حقیقت مرگ شده و فراموش کردند و اروپاییان و حتی هندیان که برادران و خواهران ما بودند و از ما جدا شدند اینها اون گوشه های خیلی دور تاریخ بشری رو فراموش کردن اینا همه در شأنومای ما هست و اینا رو من در کتاب زندگی و مهاجرت آوریاییون روشن کردم و در کتاب داستانی ایران که بارها هم دیگه در اینجا صحبت شده تر به صورت تفرد به واسه ایرانیان خواهد رسید بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم با بر استاد جنیدی من هم رو راجع به تاریخ و فرهنگ ایران زمین بد کافی نیست و خیلی علاقه‌مندم بیشتر راجع به ایران بدونم میخواستم از استاد بپرسم واسه اینکه هم بیشتر بشه چه کتابایی رو باید مطالعه کنم با پاس از استاد جنیدی خانمی هستم از تهران درود بر شما شما همین کتاب هایی که بنیاد مشروور مورچه کرده تمام این کتابا رو یا خودم نوشتم یا خودم ویرایش کردم حدود هفتاد جلد کتاب مونچک کردیم که تمام اینا رو من ویرایش کردم و پیشگفتار نوشتم یا اینکه خودم نوشتم اینا رو بخونید با همراه شاهنامه فکر می‌کنم که در دروازه های بزرگ روشن روبروی چشمان شما باز بشه درود بر شما به بنیاد زنگ دادم جواب نگرفتم از استاد بپرسین درباره آموزش پهلوی توضیح بدن و چقدر طول می کشد تا تسلط پیدا کنیم یسنا از کرمشان درود بر یسنا و کرمشان من دکی دیرتر به بنیاد زنگ بزنید چون یک سر بنیاد تا ساعت شب باز هست صبح معمولا ساعت نهونیم ده در بنیاد باز میشه بنابراین اگر ده زنگ بزنید نهانیم ده زنگ بزنید حتما هستن و به شما پاسخ میزن برای میپرسید اونجا برای شرکت در ها میتونید ثبت نام بکنید بیاید تهران اگر نمیتونید سی هایی که فرهم شده برای آموزش اونور میتونید تهیه کنید براتون میفرسن به کرماشان از راه دور زبان نیاکانتون رو بیاموزید درود در متون کهن ایرانی به چه میزان از گیلان یاد شده آیا به نظر شما نجات و تمدن گیل و آریایی یکیست؟ امیر حسین از آستانه اشرفیه در اون هیچ تردید نیست ما بعد از اینکه که پیروش شدیم بر مشکلات طبیعت و بعد از اینکه پیروش شدیم بر ستم یکی هزار ساله بابلیان نخستین پای تختی که در جهان آیا پدیدار شد کوس بود که میبینیم در تبرستان و گیلانه و تبرستان و گیلان هم یک اندکی با همدیگه در حقیقت کز به هم نگاه میکنم ولی نزدیکترین دقوم هستن به هم این در همه شهرهای ایرانی اینطور هست من در همه شهرهای نزدیک دیدم که با محمدیه خوده لجاج دارن. علتشم من خیلی اندیشیدم این بود که چون در زمان باستان شهرها هر کدوم به سرداری سردار خودش در ها شرکت میکرد اینها کوشش داشتن که همواره از شهر همسای خودشو پیش بزنن و این کوشش موند در فرهنگشون که یه رقابت رقابت باشه و گیلان و تبرستان با همدیگه این رقابت رو دارن منطق معلوم و روشن و هست که یک نژادن و اولین پایتخت تشکیل شده آریاییان در جهان که پایتخت فریدون باشه به نام کوس در اون کرانه سرسبز شمال ایران پدیدار شد پرسیدن استاد جونی درباره کلبه گفتند رف یعنی چی من نمیدونم رفی که دقیقت تاخچی بوده که سرتا سری بوده یعنی یه اندازه نیم گز پایینتر از سقف که دست بچاوب این نمیرسید ماجی گفت چرا می‌خواستم می‌ذاشتم اون شکستنی در... اونها رو اونجا میذاشتن یه چیز خوردنی رو رفی هم اونجا... می‌گفتن بله نه, نه، تاخچه تخش... تخش... پایی بود دم دست بود. رف یک در حقیقت چطوری من بگم یک تاکچه سرتاسری بود کنار دیوارون بالا بالا مثل همونجه که الان اونجه ما. شما میبینید برای اون کسی که پرسید یکی که به اندازه سی سانت یا چل سنت جلوتر از دیوار بود سرتاسر اطراف بالای خونه رو بگرفت و همطور که ارز کردن چیزها شکستنیم خوردن راشم با قلم توش می‌گرفتن بالاخر از اون خروخیا کاکو رفت اینه بقیل. من این کارا رو کردم بله و عرض کردم پرسیدن که خلوان به چه معنی است خان پسوند خان که یعنی گان یعنی جایگاه خره خورشید خر یعنی یعنی روشنایی جایگاه روشن بله نه این سلامتی بر شما باد آیا نام نسرین ایرانی است دژبان از لاریجان تردید نداره نسرین خانم که نام گل ایرانیست برد از می کنم خدمتون ما با هم یه قراری گذاشتم من یادم ر در آغاز خدمتون نعرض کنم اسامی خودتون رو اسمتون رو با،, با محل زندگیتون برامون تو پیامک ها بنویسید و در تلفن ها هم همینطور فهمی از کجا شرکت میکن که من بخوانم و می تلفن های زیادی از شما رسیده و اینها هم آماده کردن دوستان من همطور پیامک های شما. اگر اجازه بدید ادامه داستان های کارنامه و وبکان رو استاد فریدون جنیدی برای ما بخوانم قبل از اون من عرض میکنم پیامد کاری از شما زیاد اومده که شماره تلفن بنیاد نشور و آدرس اینترنتیش رو خواستید بدونید من عرض میکنم برای شما که دوروار یا همون تلفن بنیاد نشابور هشتاد و هشت نوود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار ایک دیگر دیگه عرض میکنم هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار دورنگار یا فکس هشتاد و هشت نوا 22 چهل یه بار گردم کنم 828. 22 43. و سه. و پایگاه اطلاعرسانی با سایت بنیاد هست دبلیو دبلیو دبلیو دات بونیات دات یه بار گردم خطه تیره نیشابور دات آی آر میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید اگر شاهنامه استاد فریدون جنه دیدی که بیرایششون هست رو خواستید میتونید از این طریق تهیه بفرمایید خب استاد میفرمونید پادشاهی اردشیر کمر بسته با گرز شاهان به دست یا راسته جایگاه نشست شنشاه خاندن زن پس مراد زگوشتاست نشناختی کس رو چون تاج بزرگی به سر بر نهاد این کرد بر تخت پیروزه یاد که هم جهان داد گنج من است. جهان زنده از بخت و رنج من است، کسین گنج نتوامد از من ستت بد آقاید به مردم زکردار بد مخصوص که چون دادوری و دادگستری گنج من هست کسی نمیتونه دادوری و دادگستری از من بستاند. البته این چیزایی که پادشاهان وقتی میشتن رو تخت میگفتن آیا در عمل اینطور بودن یا نه به ویژه عردشی بعدن قاییم دید. نه. چه خوشنود باشد جهاندار پاک ندارد دریغ از من تیر خاک جهان سر به سر در پناه من است پسندیدن داد راه من است. گشاده است و هر کسی بارگاه زبت و از مردم نیکا. همه انجمن خاندند آفرین که آباد بادا داد از زمین بدانگه که شاخ اردوان را به کشت خون آورد گیتی به مشت به هندوستان در نخو اینجا در نسخه اومده هندوستان ولی در کارنامه اردشیروباکان که مهده فعلوی است اونجا اومده در کابلستان بود که اگر کابلستان بخونیم باید اینطور بخونیم به کابولستان بود مهتر پسر به هر صورت داستان چنین هست که دو تا برادر او یعنی دو تا از فرزندان اردوشید در زندان بودند و یکی دو تام گریخته بودن به دوستون بود مهتر پسر که بهمن بودی نام آن نامور فرستاده جوز بارای و هوش جوانی که دارد به گفتار گوش و دو گفت رو پیش خواهر بگوی که از دشمنان مهربانی مجوی تو از ما گسسته به دینگونه مهر پسندت چنین کردگار سپر چو خواهی که بانوی ایران شوی به گیتی پسند دل ایران شوی خلاهل چنین زهر هندی بگیر به کارار یک پاره بر اردشیر. فلسطادا آمد به هنگام شام به دخت گرامی به دادن پیام ورا جان و دل بر برادر بسخت به کردار آتش رو خشبر فروخت زندو بستد گران مایه زهر بدان بود که بردارد از کام بر چنان بود که یک روز شاهر شیر به نخچیر بر گور بکشاد تیر چون نی... بگذشت نیمیز روز دراز سفه بزن نخچیر گشت باز سوی دختر اردوان شد راه دوان ماه چهره بشد نزد شاه بیاورد با شکر و پست زهر که بهمن مگر یابد از کام بر پست یک گونه شینی بوده که از گندوم آرد گندوم یا مثلا آرد برنج همراه شکر ترهم میکردن بعد من. اینو میریخدم توی شیر و میخوردن چیز خیلی خوشبازهی بود ما وقتی که بکنم ارد شیر بابکان رسیدیم یکی از شاگدان من که اهل کوکیلی بو رحمت هست به نام مینا سالی این گفت مادر بزرگ من میتونه پیست درست کنه و جلسید بعد مادر بزرگیش پیست درست کرد آورد بسیار خوردن دیدیم که خیلی چیز شیرینیه امروز دیگه این کار بردن داره ولی در زمان قدیم بوده بیاورد با شکر و پست زهر که بهمن یعنی بهمن پسر اردوان مگر یابد از کام بحر تو بگریف شاهردشی روان به دست دستش بیفتاد و بشکست پست همونگاه مرقان بخورد و بمرد گمان بردن از راه نیکی ببرد این ببینید این از است که در کانون اردشی رو برده و نویسندگان توجه نکردم چگونه شاید ما بیندشیم در کاخ شاهنشاهی وقتی که اردشی میاد به جایی میرسه که خان باشه یعنی درست در خلوت باشه یعنی در حریم خود زندگیش باشه حریم خصوصی و اینجا مرغ از کجا آمد عبدا تو کارنامه اردشی بابکان گربه و سگ و اینا پیدا میشن که اینه از دست چیز میزنن خروس پیدا میشه خروسی میاد میزنه به دست اردشیر و این جام میفته بعد وقت مرغ میخوره یا گربه میخوره میمیرن این داستان ساختگیش حالا به این صورت که به دست فردوسی اومده میگه که مرغ خورده نمیشم چیزی در حریم خصوصی پادشاه مرگ موجود درده مرغ تو باقه توی سهرست تو مرگ دونیه تو مرگ دونیه درستور ایران بپرسید شاه که بدخواه را برنشانی یا گرنشانی بگاه شود در نوازش به گونه ماست که بیهوده یازد به جان تو دست چه پادفره است این برآورده را یا آن براورده را چه سازیم این مانو خود کرده را؟ چون این داد پاسخ که مهتر است؟ چون یازد به جان جهاندار دست سرش برگنه بر به باید برید چو کس پند گوید نباید شنید چون بر اردشی طبق این داستان مسلم شد که دختر اردبان میخواسته اون رو بخوشه بنابراین پرسش که از اردب و با موبادم گفت که اگر چنین کسی باشه باید خوشته بشه اجازه رو اجازه کشتن بفرمود که از دختر اردوان تنی کن که هرگز نبیند روان این بکشیدش بشد موبد و پیش او دخت شاه همی رفت لرزان و دل پرگنا به موبد چنین گفت که پرخرد مرا و تو را روز هم بگذرد اگر کشت خواهی مرا ناگزیر یکی کودکی دارم از اردشیر اگر من سزایم به ریختن زدار بلندن در آوی ایختن که او گردد از پاک مادر جدا بکن هرچه فرمان ده پاچه زره باز شد موبد تیزویر بگفتان چه بشنید با اردشیر بدو گفت زو نیز مشنه سخن سخون به دانستان که دادیم فرمان بکن به دل گفت موبد که بد روزگار که فرمان چنین آید از شهریار همان بهک از این کار ناسود مند به مردی یکی کار سازم بلند که کزو بچه گردد جدا به جای آرم این گفته بادشو بیا راست جایی به ایوان خیش که دارد ورا چون تن و جان خیش به زن گفت اگر هیچ باد هوا ببیند ورا من ندارم روا یعنی از باد هوا این رنج نبیده این زن چون هنگامه زادن آمد فراز از اون کار بر باد نکشاد راز پسرزاد پس دختر اردوان یکی خسروائین و روشن روان از ایوان خیش من دور کرد ورا نام دستور یعنی موبد همین موبد که وزیر بود ورا نام دستور شاپور کرد نهانش همی داشت تا هفت سال یکی شاه نو گشت با فرویال خب بود که روزی بیامد وزیر بدید آب در چهره اردشیر به دو گفت شاه ها انوشه با روان را به اندیشه توشه بوی زگیتی همه کام دل یافتی، سر دشمن از تخت برتافتی، کنون گاه شادی می میخوردن است، نه گاه اندیشه آوردن است. چون این داد پاسخ برای شهریار که ای پاک دل موبده رازدار زمانه به شمشیر ما گشت راست، اما رنج و ناخوبی ببخشید. زمانه به شمشیر ما راست گشت غم و رنج و ناخوبی اندر گذشت این سخن رو بیاد بیارید با اینکه گفت که داد گنج من است و شما نمیتونید این گنج رو از من بگیرید اینجا میگه زمانه با شمشیر من راست شد و ادن داد من یعنی کشتم همه رو گشتم و زمانه بر من راست شد شعر هست در زمان فارسی که من نمیدم که سرانده این کی هست که از هست روان شاد. که بیگه که هرکتون چون تیخ مدارش کجی و خون ریزیست خلق آغالم همه گویند که جوهر دارد شمشیر میه شمشیر جوهر داره؟ چون تیخ مدارش کجی و خون ریزیست خلق آغالم همه گویند که جوهر دارد این همینه زمانه به شمشیر ما گشت راست, راست گشت قم و رنج و ناخوبی اندر گذاشت پس با داد پادشاه نشد با شمشیر و خون ریزی و ستم پادشاه شد من را سال با پنجه و یک رسید سه کافور شد مشک و گل لاپدید یعنی موی سرم که مشکین بود, بود سیاه بود و صورتم که چمچون گل شاداب بود, بود. بله حالا این کافور اومد روش. یعنی رنگ سفید اومد گرفت هم مشک گرفت هم گل رو گرفت پسر باقیدی پیشمکنون به پای دلارای و نیروده و رهنمال پس از من به دشمن رسد تا جو گنج مرا خاک سود آقاید و درد و رنج یعنی سودی که بردم اینه که خاک به من میرسه و درد و رنج کشیدم دل گفت بیدارمرد کهان که آمد کنون روزگار سخون به گفت که شاه کهتر نواز جوانمرد و روشند دل و سرفراز در ایدون که به جان زینهار من این رنج بردارم از شهریار. در در کانومه شیر بعد پهلاویش اومده که روزی در شکارگاه اینطور اتفاق افتاد که یک گور مادی رو شن... میخواست باشم شیر بزنه گور نر یک گور بره گوره رو میخواست بزنه گور ماده خودشو حائل کرد نگذاشت بر بره رو در حقیق نجاب داد بعد خواست گور ماده رو بگیره گور نر اومد. جلوش خودشو فدا کرد اون وقت شروع کرد به گلیشتن که یک حیوان ناگویای گمگی اینطور خودشو برای بچه اینطور فدا میکنه و من بچه خودم از دست دادم و این اون وقت موبادان موباد میگه که شانشا بفرمید که در حقیقت مرگزانان مرگرزانان یعنی کسانی که هست، مرگ هستند مرگرزانان و فرمان خداوندان سپوزان یعنی کسانی که فرمان خدا پادشاه رو دگرگونه کردن اون رو بر من روا دارید یعنی منو بکشید در حالی که در این نسخه که به دست فرید رسیده فیدو رسیده این نیست میبینیم که نه میگه زینه میخوام حتی گریدون که یابن به جان زینهار من این رنج بردارم از شهریار دو گفت شاهی خردمند مرد چرا بیم جان تو را رنجه کرد؟ بگو چه داریو بفضای نیز زه گفت خردمند برتر چه چیز؟ چون این داد پاسخ بدو کت خدا که ای شاه روشن دل و پاک رای سپردی مرا دختر اردوان که تا باز خواهی تن بیروان نکشتم که فرزند بود در نهان به ترسیدم از کرده گور جهان برا نام ساپور کردم زمر که از بخت تو شاد باد و سفر.